حکایت، یکی از جمله سالهان به خواب دید پادشاهی را در بهشت و پارسایی را در دوزخ. پرسید که موجب درجات این چیست و سبب درکات آن که مردم به خلاف این معتقد بودند. ندا آمد که این پادشاه به ارادت درویشان به در است. و این پارسا به تقرب پادشاهان در دوزخ دلقت به چه آید و تسبیح و خود از خدراز عملهای نکوهیده بریدار. حاجت به کلاه برکی داشتنت نیست، در بیش صفت باش و کلاه تطری دار.